شامس اونیه 4 در این شهر باید سرپناهی بیابم بعد از آن که مرد روستایی تا مرکز شهر رساندم اولین کارم این شد که دنبال جایی برای ماندن بگردم توی کاروانسراهایی که دیدم کاروان کاروانسرای شکرچی به نظرم از همه مناسب تر آمد کاروانسرادار چهار حجره نشانم داد آن را که اساسش از همه کمتر بود انتخاب کردم یک زیرانداز حسیری، لحافی مندرس، یک چراغ موشی خشتی که به نیت بالش در آفتاب خشک کردند و منظری زیبا از ایوان که نگاه می کردی، تمام شهر را میدیدی دیدی که تا پای تپههای اطراف کشیده شده بود. به این ترتیب زندگی خانه بدوشی را پس از سالها رها کردم و یک جا نشین شدم. پس از جا جا شدن برای گشت و گذار در کوچه های قونیه از کاروان سرا بیرون آمدم. در هر گام با زبانی متفاوت دینی متفاوت و رسمی متفاوت مواجه شدم. به نوازنده های کلی عرب، زوار مسیحی تجار یهودی، راهب بودایی، شاعرهای فرنگی، بند های چینی، مارفساهای هندی، افسونگرهای زرتشتی و فیلسوفهای رومی برخوردم. در بازار برد فروشها چنیزهایی دیدم که تنشان مثل شیر سفید بود و نیز خاج سراهای سیاه پوست و درشت هیکلی که زبانشان از آن همه ظلمی که شاهدش بودهاند بند آمده بود. به دلا های دورهگردی که اسباب هجامت در دست منتظر مشتری بودند به پیشگوییهایی با کره بلورین و نیز شوده بازهایی برخوردم که آتش میخوردند در راهها زواری دیدم که به قدس میرفتند و سربازهای آواری که از آخرین جنگ صلیبی فرار کرده بودند اهالی به لسان جنوایی، فرنگی، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، عربی، ارمنی، سوریانی، ابرانی و نیز به لحشه تکلم می کردند که ندانستم متعلق به کدام لسان است. این انسانها به رقم تفاوت های بیشمارشان یک چیز مشترک داشتند. ناکامل بودن هر کدامشان اثری بود نیمه تمام نیه به برج بابل میمانست هر لحظه همه چیز در حال تغییر بود در حال جدایی در حال حل شدن در حال نو شدن در حال خراب شدن در حال روشن شدن در حال جان گرفتن و جان بخشیدن چیزی که می دیدم کشمکش بود دست با و این سو و آن سو همه دردی داشتند اما دوارسانی در کار نبود بی آنکه فرقی بین انسانها بگذارم به همه کس و همه جا نگاه کردم دور از دردها و نزدیک دلهاشان قرار گرفتم قاعده شانزدهم، خدا بینقص و کامل است او را دوست داشتن آسان است دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و سوابش دوست داشته باشید فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد میتواند بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتا در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی، نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی. توی کوچه های تنگ گشتم که دو طرفش دکانهای در بود و کاسب کارها پیر و جوان از صبح تا شب در آنها عرق جبین می‌ریختند در هر ای بالاخره یکی پیدا می‌شد که درباره مولانا حرف بزند کنجکاف شدم بدانم این همه محبوب بودن چطور چیزی است این همه مشهور بودن و روی دست برده شدن و حلوا هلوا شدن چه تأثیری بر نفس آدمی زاد دارد. همانطور که ذهنم با این سوالها درگیر بود، به جای آن که به طرف مسجدی بروم که مولوی در آن وعظ می میکرد درست خلاف جهت مسجد رفته بودم. منظره اطرافم به تدریج تغییر می کرد. هر قدر که بیشتر به طرف شمال شهر می رفتم، خانه ها خرابتر و باغ و باخچه ها ویرانتر می شد. بچه فقیر و بی کسی دیدم که توی کوچه ها دعوا کردند. فقط خانه ها و آدمها نبود که عوض می شد. بوها هم عوض شد. رفته رفته تیزتر شد. بوی ادویه و روغن و سیر بیشتر شد. سرانجام به کوچه تنگ وارد شدم. اینجا سه بو بیشتر از بقیه بود. مشک و عرق تن و شهوت. پس به محله بدنام قونیه رسیده بودم. انتهای کوچه سنگ فرش که سربالایی تیزی هم داشت خانهی نیمه ویران بود. سخفش را که در حال فروریختن بود با حسیر و نی پوشانده بودند. جلو خانه چند زن در حال صحبت کردن بودند. همین که دیدن دارم نزدیک می ساکت شدند و با شک و شبهه نگاهم کردند. شهره حالتی نگران و معذب داشت. کنار زنها یک باغچه بود. ای پر از گل‌های سرخ و شکفته که زیباییشان هوش از سر انسان میرو بود. کنجکاف شدم بدانم باغبان این باغ کیست. نزدیک باغچه رسیدم یک دفعه در خانه با سر و صدا باز شد. و زنی هیکل بیرون پرید قد بلند و درشت هیکل بود و صورتی آویزان داشت گوشت گردنش لایه لایه بود و شکمش به خمره میمانست. چشمهایش را که جمع میکرد های گوشت و چربی روی هم جمع می‌شدند و از چشمهای اصلیش فقط دو خط باریک میمان. لبهایش کلفت آویزان صورتش گرد بود و پشت لب بالاییش سبیل سیاه تیغ تیغی داشت. فهمیدم آدمی که دارم می بینم هم زن است هم مرد. خنساست. خنسا خونسا با حالتی مشکوک پرسید تو دیگر کی هستی؟ چی میخواهی؟ صورتش به جرممت میمانست مثل آبی که گاه بالا می آید و گاه پایین می رود یک بار مرد میشد یک بار زن خودم را معرفی کردم چیزی نگفت اسمش را پرسیدم خودش را به نشنیدن زد یک دستش را توی هوا طوری داد. انگار دارد مگس میپراند بعد گفت: این طرف ها به درد تو نمیخورد. پرسیدم برای چی؟ اوا: نمیبینی اینجا چه جور خانه ایست؟ مگر شما در ویشها مدام هو نمیکشید و تا چشمتان به زن و دختر میافتد انگار لولو دیده باشید فرار نمی کنید اینجا چه کار داری ببین دارم به تو اخطار میدهم. آن وقت فکر میکنن چون رئیس اینجا اخلاق ندارم و همه اش در فسق و فجورم اما بدان که هر سال زکاتم را میدهم توی ماه رمضان هم در اینجا را میبندم الان هم تو را از گناه نجات میدهم از ما دور بمان اینجا بدترین و کسیفترین جای شهر است. اینجاها نیا. اعتراض کردم و گفتم حالان که در نظر من کسیفی در درون است. نه بیرون این هم یکی از قاعده هاست. با عصبانیت گفت از کدام قاعده ها حرف میزنی مرد؟ قاعده هفته هم. آلودگی اصلی نبیرون و در ظاهر بلکه در درون و دل است. لکه ظاهری هرقدر هم بد به نظر بیاید با شستن پاک می شود با آب تمیز می شود تنها کسافتی که با شستن پاک نمی شود حسد و خباست نیست که قلب را مثل پیه در میان می گیرد اما خونسا خودش را به نشنیدن زده بود. شما درویشها مختان پاک معیوب شده. اینجا همه جور مشتری میآید. اما تایفه درویشها اصلا و ابدا. اگر این طرف ها بگردی و بمانی خدا آتش بر سرمان می ریزد. چون آدم مؤمنی مثل تو را از راه به در نفرین امان می کند. خانه خراب می شوید. برای همین زود کاسکوزه را جمع کن و برو. خندیدم. این فکرهای بیهوده را از کجا می آوری؟ یعنی به نظر تو خدا آدمی عصبانی و خشن است که آن بالا توی آسمان نشسته و تماشایمان میکند می کند؟ گمان میکنی برای هر اشتباهمان از آسمان سنگ و اورباقه به سرمان میریزد می ریزد چون این درکی از حق مگر ممکن است. خونسای رئیسه نکه سیبیل نخمانندش را پیچاند و با عصبانیت نگاه کرد. گفتم نگران نباش برای دیدن ای مثل خانه تو به اینجا نیامدهام. این باقی گل را دیدم و حیرت کردم برای دیدن گلها نزدیک شدم خونسا شانه اش را تکان داد ها آن را می گویی؟ کار یکی از دخترهاست گیر داده بود که می خواهم گل بکارم حرفی نزدم این باغچه نتیجه هنر گل کویر است به زنی جوان که جلوتر میان سرمایه ها ایستاده بود اشاره کرد چانه ای اندامی بیعیب چشمهایی همچو چشم آهو داشت که عمیق، اما دردمندانه نگاه می‌کردند. آن آنقدر زیبا بود که هوش از سر هر بینندهای می بود به زن نگاه که کردم حس کردم در حال گذراندن تحولی بزرگ است. خم شدم و در گوش خونسا طوری که فقط خودش بشنود گفتم این دخترک به نظر قلبش پاک است. روزی میرسد که به سفر معنوی برود. این باطلاغ را ترک می کند. آن روز که رسید مبادا مانعش بشوید. خونسا خودش را عقب کشید و خشمگینانه نگاهم کرد. زبانت را مار بگزد. فکر ای کی هستی؟ این دخترها سرمایه منند. خودم تصمیم میگیرم که با هر کدامشان چطور رفتار کنم. فهمیدی؟ ارباب اینجا منم. یالا گم شو برو از اینجا. دیگر این طرف ها پیدایت نشود وگرنه کل شغال را خبر می کنم. حواست باشد. پرسیدم کل شغال دیگر کیست؟ خونسا انگشتش را تکان داد و گفت. بلاست. نه از آن بلاها که فکر می کنی. حرفم را باور کن. اصلا دلت نمیخواهد به شناسیش. شانهای تکان دادم و گفتم هر کی خواهد باشد الان میروم، اما ممکن است دوباره بیایم اگر باز این طرفها دیدیم تعجب نکن از آن درویش‌ها نیستم که عمرشان روی سجاده به تسبیح انداختن گذشته آنها قرآن را سطحی می‌خوانند منم ما قرآن را همه جا میخوانم در هر سنبلی در هر مورچه‌ای در هر ابری آنچه میخوانم قرآنیست است که نفس میکشد خونسا قهقه زد یعنی چه یعنی آدمها را مثل کتاب میخوانی عجب چرت و پرت میبافی بهم گفتم هر انسانی به کتابی مبین میماند در جوهره اش منتظر خوانده شدن هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه میرود و نفس میکشد کافیست است جوهرهمان را بشناسی فاحشه باشی یا باکره افتاده باشی یا آسی فرقی نمیکند آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما در اعماق وجودمان پنهان است. از ای که به دنیا می آییم، گوهر عشق را درونمان حمل می کنیم. آنجا می ماند به انتظار کشف شدن. این یکی از قاعده هاست. این بار نپرسید از کدام قاعده ها حرف میزنم. من هم ادامه دادم. قاعده هجدهم: تمام کائنات با همه لایه ها و با همه بغرنجیش در درون انسان پنهان است. شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد، بلکه صدایی است درون خودمان. در خودت به دنبال شیطان بگرد نه در بیرون و در دیگران و فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد، پروردگارش را شناخته است انسانی که نه به دیگران بلکه به خود بپردازد سرانجام پاداشش شناخته آفریدگار است خونسا این بار دستهایش را درهم گره کرد، به جلو خم شد، چشمهایش را تنگ کرد، با حالتی تهدیدآمیز سر تا پایم را برانداز کرد و گفت ای درویش دیوانه که برای روز پیها موعزه می کنی، کی هستی، چه کاری و در قونیه به دنبال چی هستی، اما حواست را خوب جمع کن اجازه نمیده این دورو برها مخ کسی را کار بگیری، این را بدان. اطراف خانه من نگرد، وگرنه کل شغال می آید زبان درازت را می و من هم نمکش می زنم و نوش جان می کنم.